بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و خیرم در آدمین و صلی اللہ علا سیدنا رسید الله و آله طایبین و فاغرین المعصومین و لطف دائمت اللهم اتفاقیم و مشتهدین و رحمنا رحمتی که و رحمتی که شد که روایت بیشتر اصلش در خصوص عین بود لیکن بعدها این به اصطلاح مسئله روغیه یک ای هم پیدا کرد و از کردی که روایات روغیه با متون مختلفی در میان اهل سنت هم موجود بوده بله و اونها هم خوردن و کل مشکلی که در روایات روغیه پیش اونها هست تعدد مضمون در کیفیت جمع بین روایات ما این نظر گفتیم روایات اصحاب رو بخونیم به خاطر اینکه ببینیم اولا همون تکثر مضمون که در میان روایات اهل سنت هست در میان روایات ما موجوده یا نه اولا در اساسی اینه که روایاتی که در خصوص اهل سن به روایات در شهاد مورد وارد شده شواهد نشه. روایات ما متأسفانه این جهت بخوام یک جه سند معتبر صحیح و معنا الان به این معنا که راوی باشه نیست و تقریبا مثلا به این که فوقش روایت باشه که بتون با یک شواهد خیلی سختی بتونیم قسمتیش رو بدیم و الا با شواهد متعارف فقهی و اصولی فقهی که الان هست در حدیث نیشه بعدم در روایات ما اضافه بر خود اصل رویه، کیفیت هاییم از روحیه هم ذکر شده ترس کردیم در مسادری که ما الان در اختیار ما هست بیشترین روایات ما در رویه در کتاب سمبول عیمه آمدیم بلا حاضر نسالی و یه توضیحی لاجی به خود کتاب تبوده من ارز کرده من یه شبههی داشتیم اون روزم باز مراجعه کردم چون چشک متعرض نشده قالبن علامه فندس الله سره متعرض کلمات نجاشی میشه گفتم ببینو علامه این دو برادر رو امنه بستان رو در قسم اول چون علامه رجالی تو دو شده قسم اول و دوم به اصلاح قسم اول کسانیست که قبول داره قسم دوم نه خود این مطلب نیاز به شهر بین ببینید این اجمال اینطور معروفه اما اشتباه میشه هم, هم مرحوم علامه این کار کرده هم معاصر ایشون ابن داوود هلوی قدس الله ما ایشون اصلا اول و دوم داره حالا دقیقاً مراد ایشون و ایشون یعنی مراد ابن داوود و مراد علامه از اول و دوم چیه اون یه بحثی رجالیتی وقتیه درباره مناسبات پیش واسه که علاوه بر اون که من مراجعه کردم دیدم ابن علامه هم در کتاب خلاصه اسم این دو برادر رو نیاورده خیلی عجیبین برای من ترکیب آمر بود نه تو قسم اول اسم این دو برادر رو بردن بود تو قسم دوم هیچ دو کلوم از این دو کتاب کتاب اسم این دو برادر رو ابن رو ذکر کرده و احتمال میدم ولی علم و ایشون از عبارت مرحوم نجاشی توسیق نفهمیدم راجبه ابن بستان همین هم مثلا عبارت توصیح نمیاد اگر نگیم که با جهالت و با اشتالی که خودشون در سنم داشتن در اجازه, در اجازه داشتن شاید مثلا بگیم عبارتیشون مشعر باشه که این کتاب خبیه هم مشهور و معروف نبوده در اجازات اصحاب نرفته و الله شیخ هم مثلا اون رو میابرد که هر حال این راجع به کتاب تب بلعیمه بله یک چیزی هست و اون نقطه کاملا قابل توجهه و اون این که انصافاً متون روایاتش بد نیست اون که س... خود محضر از اروشایی نداره خود سند ایشان هم از اروشایی نداره متون روایاتش قشنگه این هستن ده از اصحاب که دنبال متون هم یعنی با به محض ما به حساب و سوخ پیدا میکنیم انصافش متونش بد نیست یعنی خیلی با در نظر گرفتن ابهامات زیادی که با به پشت و سند وجود داره متون شوشنه و شایدم واقعا واقعا به واسه وجود بوده از خواب ما ذکر نکردم شاید بله الله علم الله به هر حال اینکه ما اجمالا روایاتی از ائمه علیهم السلام در دست داشتیم جوی بحث نیست صد در اتهاادات می‌فرمایید که اعتقاد اون روایاتیه که اینا ناظر به یک مزاج خاص و هوای خاص و مکان خاص. و یعنی همه عموزجه رو باید در نظر گرفت نزای مال افرادی همه هوایی که این فرد زندگی زن اون کوهستانی سهرائیست مثلا ساحل کجاست و هم مکانی رو که شخص در زندگی میکنه کنه سرسیره این خصوصی ها شاید اصحاب ما کمتر روایات تبرزه کردن شاید ولی اینا که خیلی مزامینش خشنگ یعنی تعاویرش خشنگ اما عرض کردیم قیل که خود این دوباره در مشهور الحال از ما عرضشون به اطلاعی نظرین توسط یک مشهور الحال دیگری از کتب مشهور و روات مشهور ما نقل میکنه من صابقا هم چند بار هر سرم گاهی اوقات این جهالت ها به ذهن من عرضتیه تعمالیه یعنی به عبارت دیگر احتمالای شخص معیم بوده ایشون اسمشه مثلا اسم عجیب غریب مثلا اب می صحه مکی. این شخص معروفی بودهوب به اال ص مکی عدو بود که به استلاحات حقیه یا تخفییه برای اسم او بکنه. این احتمال هست هست این احتمال ضعیف شاید خود صاحب این کتاب به برانظری که بودن اینا جزوه به اصطلاح اسماعیلی ها بودن ا زمانی که این کتاب تعریف شده، دوره عمه سفر به اصطلاح اسماییل ها چون اسماییل که نمان امام خادق و فاتش اصطلاح 38 بعد اسماییل معتقدن به امامت محمد قسرش محمده به اسماییل و او خیلی همه کماما خواهده بعد محمد اوضاع امامتی شما روشن نیست تا عبیدالله مهدی دویست و جمعه حدود سی در مصر در مغرب اصطلاح ادعای قیام میکنون که مهدیست رو و خودش رو منتسب میکنه به اسماییل پسر ایمان سالیا یه سه تا چهار تا امام در این مسطح هستند در اصطلاح خودشون اسماییل ها میگن گرد عیمه سه اینا عمرشون واضح نیست این هم که ارز کردن چند بار ارز کردن در بعدها چون خلافت نصر یه رفت جان گرفت یعنی که می هم میگردن او به دولای مهدی در خلافت درستی نداره خلافت نظر حدود 200 تا 300 سال 34 سال طول کشید در خلافت بغداد که با او به شدت ما آرز بود عباسی ها هم خب مختلف انهای مختلفتر چون خلافت نظر بانای خلافت شیعی مثلا بود شیعی یعنی شیشمانی اسماعی که فط نمونه ها هم در حیثت همون فط احضبیت بود این دارمون اسلام به استثناء چند مورد کم که شاید معدود باشه این معدوده که هم گفت شما معواد معدودیه که ایشون روایات که را قبول کرده که مشهور اصحاب ما قبول نکردن و اعلام محظم کتاب در آمال اسلام که شاید مثلا 90 درستر و 85 درستر, درستر اون فرقه چیه خب برای عباد قبول نمی کردن که چینی چیزی مثلا در یک قسمتی از جهان اسلام واقعه باشه اون طرف سرشم اندرست عمری ها بودن یعنی ما در حقیقت دو تا خلیفه داشتیم سه تا خلیفه یکی عباسی در بغداد بود یکی حسنی یکی حسینی منزد یا اسماعیلی در مصر بود یکی عمری در اندلس بود این ترتیب بردی که بود مرحبه از کردن دستگاه بغداد راه های مختلفی رو با عنوان زرد زدن به خلاف های خاتمی مصر انجام داد یکیشم نفیه نصب بود این توضیحه چند بالا موضعی فیلن ها سید نیستن روح بیان اون نفی سیاد و نصر البته ها خیلی اصلا داشتن که ما این جامعه از هر هم کردن هست جامعه یعنی مسجد نه جامعه چون در نیستی چیزی ما دانشگاه هر در سرم ما اصلا دانشگاه جهه تازه تحسیل شده ازتون به جامعه از هرم در هر حدود به اصطلاح سال به نظرم سی و هشتاد, و هشتاد و هشت هشتاد و هم همین خلاف های فاطمی مثل تیمونه و تبرکن به اسم حضرت زهرا علا از به اسم حضرت زهرا بودشد چون خودشون هم فاطمی میدونستن اسم اینجا هم به اسم حضرت زهرا علا از هر جامال از که خب واقعا هم جد مساجر بسیار قدیم دنیا است مدت ها الانش هست اما سابقا محور مباحث دینی و معارف دینی مثل همین مثل از رواقه رواقه و اتفاقه بول کزان کرد درست و جلس ها درست مثل این مسئول گرشت ها بسید درس مهمتی درست های معارف دینی در نظر در همین عربه یا رواه به اصطلاح جامل از هر بنا وقت بقدار یعنی حضرات خلقایی ولی بنی عباس اصرار داشته اینا سید نیستن ارز کردن اشکال در سیادت این سه نفر چهار نفر رفته چند سه ارز کردن یه مشکل این بود گفتن نسب شما از عبیدالله محلی تا محمد بن اسماعیل واضح نیست لذا این در این وسط و عیمه سخیف رو اصطلاحا خودشون عین رو میگن اسلام بردن نوشتن و بعد از مطالب علمی رو به اینها نسبت میدن مثلا مطالب این مثلا رساله اخوان الصفا رو این اخوان سباق رسما رساله معلوم نیستن بچه‌ها ایش مردان بعد از 15 مقاله ایش چی فیزیک و همین مسائل علمی ها بوده چون در اون وقتی مقدار این مسائل مثلا معبول لب و که با اسلام جور نمیاد این بیچرهای اسمان شوان نمشن. اما اسمایلی ها میگن که این جز میمون، ما اصلا که نوشتن عیمه ما همه عیمه سطر داره این کتاب هم الان از میکنم باید حدث بنده اصلا میباید تعبودی ما که خود من احساس این میکنم که این نویسنده کتاب این دو تا برادر احتمالاً از اسماعیلی ها بودن و اسماعیلی ها شیعه های غالی بودن که تحرک سیاسی داشتن یعنی شاید سر این که شناخته نشدن برای این جرد باشه چون یک روات اول هم که خوندیم از علام ابن محمد کلیمی است دایی کلیمی الان مسادرش تو زهنم نیست توی مسادر یا مستشری نقره مستشری حتیشون برون یک چهره فعال اجتماعی یعنی بولو سیاسی به است نام برده میشه عللا دایی عللا داییه معنی یا حالا یک احتمال ما میدیم چون اسماعی که برده شده مطلقا مجهولن احتمال میدیم یا واقعا این هم از خودشون بوده ازمون هایی که تاندروای اجتماعی بوده و دنبال اقامه نظام اسلامی بوده که بعداً منتهي شد در مصر این مطلب، یا اسما جهلی باشه حتی احتمال جهلی هم میدن چون نخواستن رد بکنن راه رو نشون نگذن در حال چون اسما بعدی همه بزرگان از خواب به و متون نباستن بد نیست این دو تا جهالت اول رو یک جوری باید به نظر من احتمال میدن جهالت تعمدی باشه ما این مصدر برام به یه دو بابی مرحوم و کلین به حفظ محلی داره یکی که تشرر رو به خب اون روایات افرادش مقبولن اسمش رو نمیذاریم علاوه غیرت اینکه فکر می‌دارم باشن اونجا هم ما این احتمال دادیم که کلنی امذر اشمار رو عوض کرده باشه اسم شخص رو عوض کرده چون از نظر سلطه سیاسی به دنبال کوچک کردن اثر از از دست دادن حیثیت و سورا هست اگر میشون گفت فلان آقا رفتم تشرف پیدا کردن این قطعاً سیاسی بسیار شدیدی داشت اینطور نبود یعنی به عبارت اخراق مرحوم حاجی نوری مثلا این نجم و نوشته ادی از بزرگار اسمه که تشرف خیدا کرده مرحوم کلگی مثل حالات حاجی نوری نیست اشتباه نشه مثلا زمانی که مرحوم کنی کتاب رو نوشته با زمان حاجی نوری در نجم و کاملا هم میکنه. کنه علایه حاله این مسئله یک مسئلهیست که باید به نظر من بیشتر تعمل بشه خودمام خیلی تعمل کردیم انصافا آخرین هرچی که به ذهن ما نکنه این جهالت ها تعملی باشه که ما واقعا خبری درست از این فرق پیدا نکنیم به خاطر کوشیدگی که تفتری که ایشان در زندگیش داشته چون میگم بالا نه مثل ان عبان ان زراره حدیث هم نمیش مثلا جزال انعبان از ضرر حدیث بی این هم نخرج کنیم خواب ما نخرج نکنه وقتی تعبیر قوار القرآن از کلم قوار القرآن دو تا هست در همین که یکی دیگه ما یک دیگم اون خلا کنه در بیرون تعبیر زیبای هم از القرآن القران که برای شفاس یعنی انواع امراض و آفاف را از انسان میت دور خارج میکنه تعبیر زیبای ما بغض این کتاب واقعا نمیخوره ضرر کرد نه والله این تأبیر قباره قرآن به زراره میکره فضاله انه عبان انزراره خیلی شنر واضحه خیلی روشنه یعنی نمیتونی ما به آسانی از این کتاب رد بشیم مدنشم هم تش چون غالباً روایاتی که دور افتاده میشه و مجبور میشه متونش هم که هم میشه مدنشم رو سالم مونده همین دورتی که دیدود خوندیم که واقعا خب عبدالله ابن سنان با اینکه که اصلا کلن نمیشناسیم تو توان رقیت العقرب بل بل بل و حیه و نشته ول رقیت مجنون و فلا فقال ابن سنان لا بأس به رقیت ول عوضه ول نشته اضاکان نه القرآن و من لم یشقه القرآن فلا شفاه الله و هل شیعون هم در قیاد الاشقه امن القرآن خیلی تأبید چیرینه یعنی هیچ توش تشریش ادبی چیزی علیه صلی اللہ تعالی یکون اون وقت تعبیر رو کنه ظلمن قرآن ما هو شفا و من رحمت المؤمنی بعد میگه آیات قرآن شمیش بالاتر از اینه و علیه سه یکون الله جل سن آهل و هنزل ناها در قرآن علا جبله لرئیسه خاشم یعنی مرض از کوه که دیدن نیم این قرآن میتونه کوه رو تیکباره ب و دوقت کن علاقبار قرآن خیلی تردید زیبایی خیلی هم به لحاظه عجبی و هم به خیلی بالا و لذا من که این دو سه روز گفتن که این اشغال داره شبه داره احتمال می چون من عرض کردم چند بار از کردم این رو مجموعه ای که به ما رسیده خوب دقت بکنید ای که از احمه در طب و علم و اینجور چیزاست هست رده های مجموعه ای از اینه به ما رسیده که ارفان اسطلاحیه ارفان این مستلح به اسطلاح مثل ریل آیه مباره که وشتقه آمون را کنم شرابند تحرورا ایی و تحره هم من کلش قالت ابو سادق علیسان و تحره هم من کلش این سوالله ازلا تاهر من سجر الا نسبش. خب این تعایی رو ما جای دیگه نداریم ما یه مجموعه مثل نصف شریعه عبودیت رو جوهرسون کنه ر این <متصال> مثل <متصال> هاشتریه تعاوی دیگه در نصف هاشتریه آمده که به اصطلابنده ارفان اصطلاحی چون خدا آیاد و مجموع روایات مجموعه روایات کلا عرفان اما با مصطلح نیست با اصطلاح نیست مجموعه روایات روایهات اهل بیتی در ارفان اصطلاحی محظمش اصطلاب احل سنده این هم میبینیدونی که هایی به طور کلی داریم ما تو باب حج داریم که ظاهرا ما محاورات داشتیم ما داریم تو الفبای اصطلاحی لكن اون مجموعه ای که بیشتر نگا چون مثلا مجموعه روایتی که ابو عبدالرحمن صلمی در قرن پنجم هجری مفیدی از امام صادق (ع) از عرفای بزرگه نا است و این ای که از مستشرقین استخراج کرده این شرح حال ابو عبدالرحمن صلمی مجموعه آثارش بیست آورده 21 21 شیخ تعریف کرده. تمام اینها از سادر در تفسیر آیاته. ایران رو ما نداریم. حالا مثلا یکی این چیزی که گفتم بر مضمون مجمال بیان داره. یعنی چیزی نه مونده. لكن آخرش این طور ها کذا روام عن جعفر محمد. این ها کذا روا بعضی وقت هم که این حدیث متواتری هرگز وجود نیست پیش شما. گفتم این روام ظاهرا مرادش علمای اهل سنت و عرفای سنیه زنین رواه به علما نیست تا در مصادر ما وجود نداره انو میشه مرحوم تبعسی در قرن 8م مطلبی نه عمل کردن در مصادر ما نیست همین قطعه در تفسیر ابو عبد الرحمن سلنی ابن صادق همین که در تفسیر ابو عبد الرحمن سلنی که از عرفای و قرن پنجمه 2 سال قبل از شیخ مفید و بعد از شیخ انقمصادر 411 فقط داشتون فیض ازدواج ده و معاصر شده مفیل ایشون و در این کتاب تفسیری ای که ایشون داره در این تفسیرش مجموعه روایات از امام صادق رو ما که این روایات ذکرند استثنا شد یکی دو تاشون من می‌خوام وارد اون بحث بشن بقیه‌ش هر چیز که اهل سنت بوده ما نمی‌دونم حالا این چرا من چراش رو نمی‌دونم فقط اون طریقه رو برای چی نگفتید یکم بکنید تغییر بکنید شاید علت شه پیجا رو این چطور شده که روایات ارفان مصطلح اهل ویزو سنیا نهند روایاتی که نحصه علمی پدری داره بیشتر به اسماعیلی ها البته اسماعیلی ها در مصر انصافا یک حرکت علمی بزرگ رو پید می کنن راست این دوست حتی این کتاب توحید و مفضل به نظر من اسماعیلی اسمایلی ها این یک حرکت علمی علم اصلاحی. انصافا اگر در بغداد مسائل کلامی حالا مسائل مسئله علمی هم که برداد جا داشت اما اسماعیلی ها در نظر یک حرکت علمی انفیزی و چیمی و همین نجوم و همی. و اینا رو انصافاً قیلیلی قبیلی کردن انصافاً یعنی این با رو به روایات ما خیلی نقل نشده اما این بعد رو دارد حالا آیا این آقای اسماعیلیس احتمالش همست؟ اون اسم بعدی هم اسماعیلیس که ما میشناسیم در این دوران ایمه سیت به اصطلاح هست این کتاب در دوران ایمه نوشته شده این احتمال شمه اگر کتاب واقعا از الان کلهی نهار که احتمال داره بعد تأثیر دوره فاطمی ها باشه که دیگه اون بهتر میشه اگر دوره فاطمی ها باشه اون به مراتب کارش مشکلتر میشه مقداری از تأثیر حرکت فاطمی ها و دوره فاطمی ها در تفکرات ما انشالله تو بحث بحثه دیگه همین نواره گفتیم بحثه حالا یه حالا این راجع به این کتاب وقت اون نقطه اساسی که ما در اینجا دنبال شستیم اولا طبق قاعده ای که از که مدت ها علمای قوم ما رو روش بودن و اون این بود که ما در هر موردی به دنبال روایت باشیم اون مخیرم هیلغا و خصوصیت مثلا این داره به قرآن خب رقیه به قرآن چیجوری؟ سوال یک آیه قرآن بخونیم برای سوره هم بخونیم سوره هم بخونیم و بدنیم برای سوره هم رو دست بخونیم بکشیم به بدنیم سوره هم رو بنویسیم تو آب بندازیم بخوره اون آب رو سوره هم رو بنویسیم به خودش یه دمسی هست بین علمای ما بعضی یا اعراضش خیلی زیاد شده میگن آ این خصوصیات رو الها بکنیم میگیم رقیه قرآن مطلقاً هرکی چیزی که شو مثلا فرض توی یه برنامه کپی چری جلو که بخواد آیه قرآن بشه میگه لازم نیست که اصلا نشسته نمون باشه من یه بحثی بوده که محسن ها و خیلی زیادی از علمای اهل سنت نمیانه میان اهل سنت که دنبال حدیث بودن اینا خیلی مقیّد بودند که ما این اون که در حدیث آمده عمل بشه و تبین هم بشه این حدیث ضعیف یا صحیحه از اون موارد ما اگر خارج نشیم من درابطیت خرار ندیم داره لا برسه به رو به قرآن این رو به اطلاقه حالا ما از کلیه اطلاقات داریم مثلا فهمدن که لا برسه منهاده منه. لا برسه منهاده الا منده لا الا منده روحا در اینجا چند عنوان دیگه هم آمده که درو به واقع حدیث حتی چه از امر بن عبدالله بن عمر, عمر تمینی ایران نمی گفتیم دیگر این بگم تکرار بکنید. هم حاضر نمی‌شوه یار میشنسی. از بزرگان <تصفيق> ماست. از شواه دل که نزد بزرگواری فنل از دانیش اون تو جا نگاه کنید. گاهی به محمد گفته میشه با محمد و با غلی نمیگرد الا بیشتر حلویه ما هم سه رفسته آر سالس و به محمد تا قلقی امن الرسول هم من تألیخ. تألیخ و قرآن و روغا علا این تعلیق تعلیق فهم آمیزون کردن اشفال بدن اضاکان اما اگر میخواد زن حائز او رو آروزون کنه یک پاچه پوستی قرار آروزینه مثل یک جعبه پوستی پوست. تلوی سهل حائز به الالن یکون فی عدی لن تلوی سهل مرعه خب این یک تغییر سیده شد البته این نباید به لحاظ اشکال محصه مصحف باشه چون ممکنه زن آیا قرآن بیدید و لباس یا بوده بردنش کنی میخوری که این همون معناییست که الان عرض کردن این نحوه کار رو خوبی این معنایی تعبده این معنای تعبد اینه اگر تعبد نبود خب زن می کنیست بگیار در رو لباسی قرآن چیش کنیست به دستش نیمی خواهی معلوم نیم میشه در خصوص مرعه این تعبد هست که هست اگر رو لباسش هست توی پوست بگذاره خوبی قصده حالا برای این تعبد روشن‌تر بشه. میگه حد ان شورای ابن دبنی ذرا هم نشاستین حدثنا فرزاده کی میشنستین ولی خاصه ایشون خاصه محمد جوهر بردادی باشه جمیعاً ان ابوالن عثمان که از اجلای اصحاب ماست انا عبدالرحمن بن علی عبدالله بخری یعنی تمام سند و تاریخ سند به آنها واضحه مثلا این ابان اهل کوفه بوده اما به واسه تجارت بشه. لذا ما در روایت ها بان یک حدیثی ببینیم خاصون که واژه جمیل نمیذینه دقیق بکنی این جهراشی احدیستو که ما بر رجالت برسیم که ما نه همینه اصلا عبان هم از علمای کوفه نه هم از علمای بسره چون تجارت بشه بسره تو هم داشت اما جمید در شراحال سیمشه نشده که ایشون تجارت بسید بسره جمید از کوفه نهارو کنه این عبدالرحمن ابن عبدالله از علمای بسره و هوه ابن صالح عبدالرحمن ابن سالم به اشتباه کرده از نویسنده ای کتاب این اشتباه قال سعن تو ذهنم نیستا من کرده هل و علیه شیخ ام در تعذیب قال لابست را بنا اصابت را دقت اصابت نل جنابه قلت قلت را بنا اصابت نل جنابه ما اینکه جناب باهایز داریم کردیه که فهمنه خود امام فراب این تحبوت مهنش اینه در جنابن حساب القاعده لباس خب به بدن نمیخوره حساب القاعده این امن مؤمن لا انجس هم به نظر امن صوبه لای انجسوده احتمالا اشتباه شده باشه برد این صبع هم داریدون این صوبه در به نظر مؤمن باشه صوبه باشه به مجلس. در شده مهمون این تا ثوبه دیگه برای شما مهم نیست. بنابراین میشه مهم میشید. علیه حال دقت بکنید اینه من در حدیث قدی اعتم تعبد این چه دیگه کاملا واضح شد تعبده. یعنی با جنابت آویزون بکنه اشکال نداره با حج آویزون با چون که بنای اساسی دیگه در این مساله بین حائل و جنب فرق داریم. دقت کرد؟ خاص این اگر در حالت مرض بخواد به عنوان تعویض آویزون بکنه حصوص حائض تعبولم توی, توی پوست بگذاره وقت قایده ی تب بلعمه اینجا روشن میشه اگر تب بلعمه با این شهادی بکیم قبول کردیم این تعبوت قبول میشه اگر تب بلعمه رو قبول نشدیم این تعبوت هم قبول نمیشه یعنی شما اول که مثلا تو دوارد چیزیم فقط جنبال درستای بام بوم بوینات نه من در این حال هی میخوام نکات فنی فردی رو هم برای روشن بکنم این فرق بین حائز و جنوب روشن شد، فرق بین حائز و جنوب به ادلا فرق بین حائز و جنوب در غیر از مسئله مرز فرقی نمیکنه. نه حائز و نه جنوب دست به قرآن نمی زنن و جنوب باطل. لباس میشنن قرآن رو بیگن فرم اما مرضو میشه اگه میخوان آویزان بشه این معنای تحبوت بوده اینا که صاحب فقها موقع مثلا شیخ خضر اینجوریه دقیقاً با که در روایات تطابق میده حالا میخواد که یه کمی غیر معقول باشه تعبد دیگه من چند بار نهی کردم ما یه روایتی داریم که مثلا آدمی که میخواد بزرگیه مثلا انگش جا جابجا بکنه یا حزره رو یه روایت داریم که مثلا قص نذ اش انگش در انگش در, در دیگه. خب فقها بودن فهمیدن مهم آبرویی نمیشه که راه نمونن یا در اما شیخ صدوه ای این نواز ستا میگه دیگه این وضوص این کار اگر باز نواز کار رو بکنه, بکنه. یعنی شیخ صدوه این اخصاص به شیخ صدوه نداره این مکتب قومی ها بوده و اختصاص به شیعه هم نداره معذن اهل سنب که اهل حدیث بودن کارشون این بود میگه اونی که تأبد آمده تو از گفته این کارو بکن هم کاری میکنی، تو از گفته این کارو بکن هم کاری چه کار میکنه ماه موسول ابر؟ اما دیروز اون داری ماشی ادای دادن که مهم موسول ابر. سادک بود و آماده کرده. میشه چه کار میکنه ماه موسول ابر؟ تهدید وجود دارد و دارم میگم. اگر ما را برای قبول کردیم که واضحه. این شده من برادر فرد دسته ای استنبامیون نکات فنی علمی رو در برگیریم. این معلوم میشه در خصوص حائل اگر بخواد تعویز بکنه و آویزان بکنه و اون رو روی لباسه تهب توی باید پا... توی پشت توی جردی بذاره پوسی بذاره اما جلو اگر میخواد قرآن رو آویزان بخواهی یا آیا قرآن بکنه احیاسی میتون به لباسشون بکنه اونشتار نده این هم راجعه به این نقطه فرش در کتاب پربول اسناد در حسن ظریف ان حسین علوان که اخیرا متحرشان جفر عدی سن لعن اجازه شواهد در به هر حال من هیث المجو اساس مایی دیوار ہے خودت حجت ہوتے تو مشكله دخلی مش برای فتو مشکله اما شواهد داره اونطور ظریفی که آدم اول خیال گریش خیلی خطر انصافا خب متن روشن هر متونش متنش واضحه ببینید کتابی که مشهور نبوده تو اجازات اصحاب نرفته خیلی مؤلفش نمی‌شناسید راوی‌ها اول... و مشایخش نمی‌شناسید خیلی عجیبه عادتا باید این متن کتاب خیلی مشرح باشه اصلا اینطوری دیگه پس این بود یه اصلی داشته باشه با تمام این مشکلات تاریخی هنوز متن مشرح نیست بزرگان ازش شرح نکردن مثلا کلی دیگران خیلی مهمه مگر نکنم معضلی نکنیم از مشابهانی. خب، دلیل وسوالم قبول کرد چرا؟ تو قبول ای که من شلوغی یعنی چون تنه تهی نیست به آره یشون کیست؟ تنه سعی میکنن. نیم خواهند بردون بهش میشه مالش میکنن یشواریک. مثلاً آن نالیان شو. البته ما لوگر ولستند. ما لوگر توی بردای میزنیم. تا ویدیو آلة عال سریان. فعال عال و ماشین تو میذاره کانه حتی ما این آیه این حدیث تکلیف نداره معلوم میشه که کلمه سویان هم احتمال داره رو ای بوده اون نقطه‌ای که سریان چون مکلف نیستن تعلیل بر اشکال نداره بزرگان اگر مرد باشه راه جنوپاچی اشکال نداره زن باشه توی پارکینگ توی کوچه باشه در کتاب جعفریات از به اسناد امام علی بن ابی طالب وقتی صحبت کردیم قال الله رسول الله لا رقا يلا رقي الا في سراس اینجا جوبه نوشته بعضی از مصحف هایه نوشته نمیخوام چه ظاهرا غلطه هر حال حامد هسته حمر نه همه حمر اسم حیوان سمدار او في ايهن او في دنه لا یاده اصلا این یه روایت بسیار مشهوریه که اهل سنت اون دارند و یکی هم یکی از انواع روایت گرفته یعنی از یک طرف پیغمبر لا روغا الا فی ثلاثه از یک طرف در غیر اینها پیغمبر روزه رویه بکنیم لزامت پا آرومین تودگاه دوشه هر کردن این روایت لا روغا الا فی ثلاثه پیش ما یکی جعفریاته یکیش دعاینه یکیش خساله خوب کردیم خسال هم از گرفته گرفتیم که سر سکونی هم پیش ما منطبع نیست پس فرق در این ما با اهلسانت روچن شد این لاروغا لافیسالات فیش اهلسانت تو صحیح بخاری هست صحیحه لذا باشی گیر دارن در مسادر ما صحیح نیست لذا ما خیلی جمع نداری. <تصفيق> گیر جمع نداریم چون گیر کرد چه کار رو از یک طرف لاروغا لافیسال از توی گفتیم به خودشه. شیع این چه کارش بکنیم لذا اونا وجوه مختلفی در جمع ندار کردن ما تا آفره هم یک اشاره به اون وجود میکنه، میکنم دقیق. و طبیعه هم از وجود چیزی نیست که بخیم بگیم که خصوص اونا دارد پس بنابراین رواست لا رقیه یا لا رقا احتمال قوی داره چون کتاب قضایه و سنانال احکام بوده به اونان قال رسول الله هم با صاحب یا از اون کتاب گرفته یا کتاب الجمفر یا چون هم کتاب الجمفر یا پیش اختیار صاحب دائم بوده کتاب شاکونی هم احتمالاً بوده یا به همین عنوان بود یا امیر جعفری چون دو کتاب از این کتابی که ما همین یکیشو جعفری داد دیگه پیش ما هست پیش پیش صادقایی بوده تصریح میکنه مثلا در کتاب دائم در کتاب ایزاح ایشون از کتب جعفریه تعبیر می کنه جعفری یاد نه کتب جعفریه حالا وا خلاص شاکونی و این که خسال تنها آورده مرمو میشه بزرگان اصحاب ما مثل کولینی آسدو تا قبول نکردن و این معیل میشه رواید است که بلعیمه رو چون درکه بلعیمه روحیه مطلقه خصوص این ستا نیست سنیان که خصوص ستا آوردن گیر کرده مرموششون باستی فرمه چون روایات داره که استرخواه به قرآن بکنه مطلقه اینجا مقاید به سه تا شده الا فی سلاس دیگه نیست سونی ها میگه کنی چی کار بکن. از اون دو تا مطلق هم دارن. یه مطلر دارن که رویه نباشه یه مطلق که رویه باشه اینجور مقاید هم دارم؟ لذا اونها مشکل پیش آمده بعد ایشون از کتاب در... این بباید الان در مسادر ما وضع اعتبار نداره بخاطر خاطر اینکه کتابات سرکونی اوما داشته. در کتاب دعایم حدیث شماره نونزه آل جفعه دارد اردت انتحویز سرون مکفه ببینید دستات جمع بکن وقرقیه ما به فاتح کتاب کتاب و الله اهد ثلاث مرات سن مجهن همون از المکان الگی تجه این را ارز کردن این الان طور ما من نبیدن باید این در ارمون در دعایم ارز در کیفیت استرقاب تح ما هم به اهلسنت هم داریم اهل سنتی رو به سند صحیح از آیشه دارن دارند سنت این مطلب رو به سند صحیح از آیشه دارن آیشه میه پیغمبر رفت خوابشون سه بار غلواله دس ی لزیا چار غل یا دوتاشرو میخوندن و دستشون بر و بدنش رو میکشیدن ندارم که تا آخر پا تا هر جا ک دستشون هس تبیرش اینه مس از سرس سینه میا ا تا پاینتر میاد تا تمام بدن نه اینجا هم ما داریم اما این الان در مصادر ما نیست. من الان ما برای شما عرض که خصوصیات روشن بشه. ثم ذممه ها این چند ذممه ها به چه شکلی مفرد و دقیق جنگ بود؟ رق باز اونجا دور میشن چی ها؟ ها؟ باز ذممه ها. آه باز ذممه ها. شی زمانه این چه غلطی کرده. وقرءه فاتحه و بعد از اونم برام بلطرز ثلاث مرات ثم ذع ها این درس. الذي تجد از این میزانه از ثانیه باید باشه صمت ظلمه همه وقل وقل وقل وقل وقل وقل سمت وقل وقل وجه یعنی مردی انسانی که احساس درد داره وجه خود درده هر دوش سه ما شده وجه به فرق مانه درد وجه کسی که دردمنده این هم راضیه بیهیم از الله علیه و